دیم رکاری بردوامی به نمای دزگیرتن بسر درونده هر که تک اقلی مروف به بیروکی چی نوی بکریتوا او هر جیز نگریتوا بودو خی اولیویا ویندل هولمس دکتور سفینگ یوانگ برکر سروچ انجمنی بر ریوبرنی کمپانیه کیونو دام از کمپانیه فروکوانی اسیانا به چگل کس زور سرکو توکانی کوریا دادن ری باو چی به شفری اوتومبیل چی کر اوه تون بلدی کری که بکری در سری کاری دکتر پاشان، اوتون بلدی دیکه کری کاتک دستی که برای جبر جکریم خوانه کنی لفراوان خوازیو زیات رو پیکننی سامانه چیجاوردا هر چیه چی هابو حکومت دستی به سر داغرت اما جلساتی جنگی کرد یادابو و معایطی کامل دوای او باو چینا و براو مرد. دكتور بركر او بینی که لباو چروده باید بریاریده اوتون بلدی بکری و خوی و کشفر کاری لسرپک پاشان اوتون بلدی دو دایه یه چگل اندامانی خیزانکی کاری پیب کند بمشه ویل زیادکرنی دستکو تکانی دا بردوان بو تا خیراتر هاوکاری خلچی زیاتر بکند کارکی پر ایسان تاکو بنیادی امبراطوریتی شعابوری تیری دانا لره او کاروانا کاروانی پاسا و کبو خاوانی و تا کمالک پاسی کری کر بردوان را سرکوتنی کوا با سرکوتنی چیدی که پیش دا کود کارکی فراوانتر کرد با چون ایرلینز درست کرد لسره تا در ضرری زوری کرد خلق آماشگاری انده کرد وازلم بواره بیند نباده هم مشتگل دزبدا او جویبه مقصانه نده داو لسر پروژکی هر بردوان بو لدوه برنگربونه وی کوسبو تیکشکانی زور و زیانی مادی گوره دو خکی گوره است کمپانیای اسیانه لو کمپانیا به دستکوتانه که دهاتی سالانه دگه 20 میلیون دلار. لدی دا رګ د لګل کانالی تلویزیونی حوالی بناوګس سی ان ان لپارهین هنيسه کټنکی پرسیار لا برکر لیکره اوجتی دلصوزی ورکسازی خو هم سرکاري ریکوپیکو بردوام راهنا تا اوید مې و خو ازم بده سی بهنم کاتک دیارې بکمو بو کارو کاتیک بو خزانو کاتک شو بوتند من چې جی تو ول کار کوم ورده له هر کارګدا ک انجامې ددم دا د مې پلی بالا عمل منای پی آی که لا هیچ وادستی پیکردو، بود گورترین ساماندار. آواج به هویتر خان کردیم جانی بعجیتند با, با آماندگانی به هوی سر راستی اقدار سازیو کاری بر دوا مورکوبه کوه. زاره کسیک کم کنوهای چشی شیرشی دواه یارم تیلی گوتی گویی به هوی امکشش زوره و جانی لیتک شو. بود دبازانی که شکشی همورگیتی تایب دمای تقریکر داده او بالام بی پرسیارم لیکرد چی پیویز بی کاد او پرسیار مليکرد چې پیویس بیکات بو اوای بغته او چشه نمونه ییکی اوغوتی نه زانم هله بر اوای استال رام لمن پرسی اگر لاشت شو خوریک بوایا چې د کلب او او ریک و شوخی په فاریزي ګوتی لو حالت ده بلای نه کوم سه ژله هفته یک د ممارسه مشق ورزشه کنه ذکر سرباري خوړنی خو را چې تندرست او حوريتي باشه رنګ هولم ده یا کسانې خاون لياقي برز ببینم تا ته او کارانه کم کا اوان پي حال داستن پر سياره سروش تي کمن اوابه اي بو, بو کارانه ناكي او هیڅ ولا ماشينه بو ام په پلان شي ستراتيجي نهابه بو بو کوم کړنو شي شکیو د توانه او لا شريچي او تندرستي به بيو به وه ستکان باشتر دبنو لويتي دانو ژوند شي خوشتر دوي کتي ام پلاني جبه جن نه دکړ لبر وه حاتوت اللهمن تا کو پلان شي سحري پيبد اگر همو سي ام هم پياول يك بدينه و دبیني هیڅ توانه چي کم نبو. معدش کوسفق نبو لبردم بدی هنانی خونه کاننده بو بلګی ک زوری خرج کړ دوو بو درمان و او رګانه او کاته ل بازار ده بو سرباری او شکاتی پیوست یابو بو کر فکرنی نقشو پلانکی ک واته به دیار کراوی تشته چیکما اولاميان پر سیاره اوه او رکساز یو توانه ریخصنی نبو وهای لپکاته سرکوتي دروز بگرته با سر بر بو به دستینانی امانځکه هر بویا لته سره سرکنی ام فی او ده پيداګری مله سرتوانای کارکړنی ریکوپیکو بر دوامې بو یارمتیم دا کار با پلان استراتیجه که خوی بکو لنگاونان چی بچوک ده جیب جیب کد. بو امش پشت به با بردوان بون لسر جیب, جیب جیب کاری و کاری رخ رو. هر و ها یارمتیم ده لپردان بوین خودی ایجابی که. لکوتایی ده گیاندی دستبر کردنی آمان زکی. امپیاوه لکم کردنوی چی زیاتر سرکوتو بو ببری اندازه زیاده لحشتا راتل. استابر رکو پیچی ممار لانی کم دوزر لحفته اگده و جیانی شیز زیادتر خوش بوا لوی پیشتر تیده بوا لیچه اگل اوانکانم ده در سروری خود با اما دوانم گود که اوان بدرجه ای جیان یا ریکه رو هندی چیان بسر سرمان و لینده پرسین چون اما ده زانید؟ لیچه پرسی زگره ده چشی گوتی ده سالات زگره ده چشم روزانش پاکت یک تواده کم پیم گود پیم نه او تی پروژنه بر ریکوپیاچی پاکټ یک دیګره د چیشیو ماوي د 10 ساله شبر دوامې. په شان پرسیار ملکاسې چی دګه کرد. په بردوامي سېری تلویزیون دکې غوتی بالای همون پروژه. په شان پرسی ملکې ولا سره ما بردوامې غوتی د وروبري ساله. اما کور که کینوله وله ودا ک کسې چی دامز راون لسیر له سېری کړنې تلویزیون د. هم دو نمونه راده وابستبوند درخ. یکم پابنده به به اما همیشه رکسازین بلام زوربی در مزرابی و بردوامی من لسرشتکان بودرست کرنی خوخ را پکانه وقت دیگره و زور خوری و راحتن لسرمی خوارنو و ماده سرکرکان و زورت مشاکرنی تلفزیون و ممارسه نکردنی ورزش برانبر بوا کس سرکتوکان دبینین هزی کنترول کردنی کسیانه بکردینن لباشتر کردنی آستیش یانیانده تا کجیان چی کامران تر بجین بوچکتر کردنی از تی و تندرستی و جیانی خوشی هم بشه ویچی توا و کامل با آوی خوشی بجی. لبر اوابه بی خود کنترال کردن هیچ وزه یک من بو با با در با خود کنترال کردم در توانین لسر مشقه شکن بردوان بین و پارزگاری توانا لاشه یکن ممکن زول در زول خوابی در بیتوا دور بکویتوا لخوا خراپکنی و جگر چشن یا خواهر نوای می یا خود زور خوری تناند اگر او خواه خراپانه ماویی چی زوریش بی هاورید بین خود کنترول کردن یارمتی داد لگورینی او برنامه حل سو کهو تکاند لقلب داد با برنامه چی ایجابی یارمتی داد لعرسته کردنی و زکاند دا روح سر اما هزی خواه کنترول کردن و خود کنترول کردن بگمان آسانه که تکاند لکومل کاری چی بی بایغ دا بفیروب دی یعن هره رنگ دیگره چیشن با هر کسی کزور اصان تر بید لبردوانبون و رکسازی لگل مشقه ورزشکان ده خو خرابکن با ماوی چی کرد چیزن بالام هر اوانه با ماوی درش گینگلدان و آزار و جانت پیده دن زر اگلی چگلی آنه ورزشکان بینی کچیکم بینی لطمانی بی سالان ده بو لیاقه چی دستهی باشی بو زور بلی برانه و مشقه ورزشکانی انجام ده ده توا وگ اوی گرین در باره او پرسیارم لیکرد که پیویست من پیه تی بو اوی بگینه او است برزهی لیاقی زستهی که او حیاتی. بزر دخنه ای که وغلامی دامه او گو بو اویلم است دا وکومنت لیبه و لیاقی منت هبید پارزگاری شی لیبکی پیویستت بهمو تمنت تیه. پاشن با سیکر که لتمنی شه سالی دا بوا و تا جیگه گلتا پیکرنی هاورکانی قتاب خانه تنها لبر اوی قلو و گوشتن بری یی د وا سنوری اک بو هم ازار درونی دبنه لو ساته و روزانه به بردوامي مشقه ورزشی کردو بلاینی که مروژانه یک هجمر به و کوتای بسکانی من یک لاشو یک شی انمه اگر خون گرینجی به خون ندم چه گرینجی پیدا ده هم خانملاون هین کانی سرکوتنی و تو بهوت یک کوشان و ترخان کردن کاتی تایبتی با مشقه ورزشی بهوی بردوام بونو خو کنټرول او زستا شوخ و ریکو او جیانا تندرسته هی او خواب آشکانی کردو با شکل جیانی روزانه خوی آیا کسی که دناسید بریاری داو ممارسه مشق ورز شکان بکاتو چوته یه چگل یانه ورز شکانیش پاشن زرگان با مشق که و ایدینه چوتو با یانه که و مشق ورز شکانی وازده هی ناوه آیا هندگلو کسان دناسید توابی آرزوی خویان با فیربونی یه چگل زم پری ماده دا وکروی خولکه کریو له هفتکان یکمی خولکش ده آماده او ورده ورده پیوستین بوار نکانی و نه بو لوادیه خوینه چونو تنبل بونه ل آماده بونی ریکوپیکو اور گرینج یکم جری فربون نه نماو ل کوتایج بتوایی وازیان ل خوینه که هیناو چنکز له امکتیب کریو بو تنهات زاری چنه خیندروتو چن له امکاسیت چکریو هر جیز جویلی نگرد و جوان اگر ارزوی سرکوتنو باش کرنی جیان تابید دا داد جولو هلسوکوت بکیو و بستهی تو مرونتی تواو تبه. بلام اگر ایرادت لسر او نبی رو جانه با همان پروشی و بردوان بید بدل نیایی و فشل دهینید لعاری کارتی دبونونه زور کسم بینی و لوانه نوی خوی انتومار کرد و بمبستی بجداری کردن لمشق و راه نانکان و گیشتن ب توانه ای پریزګری له خو کړدن دز دکن به راهنان نه کانو هنګاو کمیه ساده کان فرده بند بلان پاش موای خلی راهنان نه ک به توایب جدیلن تنها کمې چی اوان پشتیني رجبدس دینن هویا مجبورنی هزو توانه خود کنټرولي یا یان نبونی جورج برنار شوګو تويتي گرنجي به بدسینان او شتانه بده فخوش دویت دنان نشردویت او ای به دسی دهینید قبولې اگر فرهنگ کام بقرین بو معنی خود کنترول کردن الانضباط الذاتی دبینید به معنی دسلات بسر خودا گیرتن بو انضباط الذاتی تا که سیفته و کسی آسی وهال دکات کاری گورون آسی انجام بدد بر دوام بل سر جولو خلصو کوت او هیزه کدت کیان تجانی چی باشتر دکتر روبر شولر گوتیت هر چیس هیز گرفت مکه به پاسو همیشه بر دوام با بو زره کله هوای و انم پیشکش د کړل سر برنامه رجی زماني نه د ماري البرمجه اللغهوي العصبيه لکات ما نوم دا لويندر ورزشي ري روشني خان مې څرن زی راچشم ک شما مشقې د کړو پالي بګارس کې چې چوشې منا له نودنه او بهز و چون ک د و سر پرشتي کړدنی من دالې چې په سکوله ري له ممارسه کړني ورزشي نه ګرته و کاتيګ رونسکانلاني امريکي من دالې چې په بو هوګري ورزش بو در سال 1956 توشی رودای اتومبیل هاتو به معجیزه دکتور کانجیانیان رزگر کرد بلام دوایی توشی شللی تواواتی بو لکمر یو تا پی کانی لسر تا رقی لکرسی کم اندامی دبو لسری دابنیشه و همیشه باسی بختو چار رشی خویده کرد لسرم حالی بردوام بو بلام پشت پراندنی ماویگ لگل امدو خیدا وازی لم هستی هیناو لدرونی خویده گوتی اگر اما او باره بی که بدره جایی او تمانی ماو مل سری ده من موا پیوست هر چون اگ بی تا او پاری گونزان چیش لشیا نمور بگرم لدوی او هولی دالتن یانه چی ورزش لبشی کاراتی ده دا بجداری بکن بلان باوی دو خیطایبتی جسته او رفزده کرد تا لکوتایی ده بیل لیسلی راهنری کانگفو رازی بو راهنانی پیبکن همیشه رون یکم کس بو آماده راهنان ده بو دو همین کسی دا بردوان بود، آریکش ده پیشکا و تا پیش دینی رشی ورگرد. زور به هز بود، لبزاندنی هر تشکاریگ دستکانی و کرسی تایبتی کی با کرده هینا. که تمانی بود با سیوحو سال، گیشت برسترین استکان. خوی بو ما مستو قطاب خانه چی تایبتی پی بو که نا، بود فرکرنی کنگفو کنزیکی دوست کسی وردگرد. لاتساو پی کودنی چی ترفزیونی ده پرسیار لرونک در باره او و رگاهی با و توانی بسر حالی لعوازی خوی دازالب بی او گوتی که تک آمانزه کتابو با گیشتن با آمانزه و زکت سر کرده و توانکانت خست بواری جبا جه کاری و بردوامو رکر بوید او هر دبی سرب بکوی و ام آمانزهت بدست بهینید نوسری امریشی جم رونگو تویتی اگر با حولی سرکو تو لپناو بختوری و خوش گزرانی دا فاکتره کبید او فاکتره خود ب هر آواي کلی لکانی خواند کانتی ل خارج تو. آوپردهای کبیر و دستکوت کانت پیک و دباستو، بنمای همسر کوتنه چی شد؟ نبودنشی برای فشار و بیورید داد. دا هانیپال گویتی اگر رجای سرکوتن من ندوزیو پیویستا خو خم اندای به هنی. و خود کنترل کردم کلی کبابه و دعای تر رجای سرکوتن. هر آواي آرمانی داد. با گورینی خو بی رسی بیکانو، پرپیدانی کارو بی رایجای بیکان. ریکاری وحد لیدکات دکات لسرتای تاکو تای ریگا پروش بید. لامروه دز بکه با بونیتنانی ماسول که کنی و ریکاری. چون که تنها او ماسول کنن که دکری لسر بردوام بونی جولو هلسو که کنید یارمتید بدات و برسترین آستی سر که تمت بودا بیمکن. لامروه خو کنترول کرنو بردوامی بکه بیه چگل خو کنید و ریب و خود بسازینا تابهیز بید. خود له بی ندان خوی چ کنترول کردن و بردوام بونی ایجابیانه بردوام با ملیونیر چارلیس جیفنز گوتویتی کال ندان برگری لناو دواد استاش امرو چهت پیشکش دکم با گیشتن به بردوامی و دک هر لوانه تو مار بکه که دا خوازید بدهی کچی بردوام نا بیده سریان دو، به پی گرینجیان رزبندیان بکه سه، لگل زیاد کردنی دستواجه من دتوانم به دنجی برز او کارانه تو مارت کر بون مونه اگر لیه کمنی لیستکه دا حیه، روزانا کم ریک و پیک دکن، اوا بمجره بیخوینه رو. من دتوانم روزانا نوسیگ کم ریک و پیک بکن. اگر لسرتای تای لیستکه دا حیه، روزانا مشق ورزشکانم انجام ددام، تو بی خوینه من دتوانم روزانا مشق ورزشکان انجام بدم. چهد. استا پیلو وکاند لیک بنیو، خیال خود بکا آمان جا کد بدا سینه و. پاش استا آرک پیویستکانی سرشناس انجام ده. هیچکاری چی دیگه مکه تا آور کانت جواب داده کی. هر استا بو او کار حل بسته. شش که بالایی که دایان جوانی که دیاری کرد پیویست پیوست بیت باوکاتو تنها خلاصشی شد دوآن که بیت. با پل بندی دست که با بونیادنایی ماسول کیبر دوامی و رکاری پاشان خود دبینیتی وا روژیانگ در روی پریتیل پر کامرانی افتدورستیو سرکوتن. ماموستای گوتویتی اگر ویستت ببیتا پزیش کو زانستی پزیش چی اگر ویستت ببیتا اندازیار زانستی اندازیاری بخوینا. اگر ویستت سرکوتو بیت دیراسی سرکوتن بکن. سرکوتن لنیوان دستکاند زور گرینگا بلام دبی آگه داری اوش بی سرکوتن لنیوان دستکاند ده. تو اوهزت های ببیت یان کار بکید یا خود ببیتا خواهنداری هر چیک کدی خوازید. بروان را بر دوا گوی گنجینه کله ازمون و پاسپوری دانه نه به کاری بهنه بروان داهاتو به وای هیواه که بو کامرانی بو ادوین دیگه له خونی کیزنیه بهانیش دیگه له بینینو بدی کیز نیه. بلالم امروغ اوای پیوسته تی داجیت وهاله دوینه دکات خو یک بیت له کامرانیو بهانیش بینینو دیدارک بد امیدواری همیشش یادت بید همو ساعت گه هرجی کتا با باور اوبجی، با امید اوبجی، با خوشبستی اوبجی، با تیکشان اوبجیو رز به هجیم بزنه. ښویستان هنوکل د وای اوې د کلیله کیسرکوت نژانی کاریګریانه د لژيانه اوانه دابینی که خندونه ته چی جدل لژيانه می سرکوتي انورګ کومل یکرڅه ته ناسی که ام کلیلانه انته د برڅسته لګر څونیتی ورګټ می تاووتینو اوی ته تا کړنو کار فکردن یان لژینه ده د بیت بر یار بدیت د بیت او پرې مودا ژوند بګوزارینید کاته دانایانه به کاربینیک پیګوندیکن د لګل خلچی دا با شوباشتر بکې وقت آواز شانیتی جانی چی باشتر بجید. آماده کانت دیاریب کیو همو تو آن کانت بوده سیانانیان با کار بینید. بریار بداقع زاین روباروی سردم برانگاری کم بیتو. بیرد بیت. زستان سرتای حاوینه. تاریکی سرتای نور روناچیه. گشارونا راحتی کان سرتای پشون. رارای سرتای کامرانیه. فشل سرتای سرکوتنه. من هیواي بختی چی باشد بوده خوازم. دبید به جولی تو شانس و بختی خود درست بکید ایزابیانه بیر بکره ایجابیانه ایزابیانه جولو حلسو کود پیش بینی باشتر لوبکه بکر لوی لشیان هر وگل فرموده چی پیروز دا هتوه تفاعلو بالخیری تجیدوهو لگل هیوه ایبراهیم فقه بو همو سرکوتنی که دی خوازید بدیهنانی خونکاند بو اوک خونی گورو گورت رتبید